به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ای مردم از عذاب پروردگارتان بترسید که زلزله رستاخیز امر عظیمی است یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن, ولكن عذاب الله شديد آنچنان وحشت سراپای همه را فرا میگیرد که هر مادر شیردهی کودک شیرخارش را فراموش می کند و هر بارداری جنین خود را بر زمین می نهد و مردم را مست می بینی در حالی که مست نیستند ولی عذاب خدا شدید است ومن من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا برمیخیزند و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند. کتب علیه انهو من تولاهو فانهو یضله يضله یهدیه الى <سؤال> عذاب السعیر برو نوشته شده که هر کس ولایتش را برگردن نهد به طور مسلم گمراهش میسازد و به آتش سوزان راه نمائیش می کند.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 ثم من علاقة ثم من ضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم لنبين لكم ونقرف الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم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 وترى الارض هامده فاذا انزل عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید به این نکته توجه کنید که ما شما را از خاک آفریدیم سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده سپس از مزقه چیزی شبیه گوشت جویده شده که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل تا برای شما روشن سازیم که بر هر چیز قادریم و جنین ها ای را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار می دهیم و آنچه را بخواهیم ساقط می‌کنیم بعد شما را به صورت طفل بیرون می‌آوریم سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خیش برسید در این میان بعضی از شما می‌میرند و بعضی آنقدر عمر می‌کنند که به بدترین مرحله زندگی و پیری می‌رسند آنچنان که بعد از علم و آگاهی چیزی نمیدانند. از سوی دیگر زمین را در فصل زمستان خشک و مرده می بینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو میفرستیم، به حرکت در می آید و میروید و از هر نو گیاهان زیبا میرواند. ذللك ب بأن الله هو الحق وَأَ يحل الموت وَ على كل شيء قد این بخاطر آن است که بدانید خداوند حق است و اوست که مردگان را زنده می کند و بر هر چیزی تواناست و أن الساع آادية لا رب فيها. وأن الله یبعث من فی القبور و اینكه رستاخیز آمدنی است و شكی در آن نیست و خداوند تمام کسانی را كه در قبرها هستند زنده میکند ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا كتاب و گروه از مردم بدون هیچ دانش و هیچ هدایت و کتاب روشنی بخشی درباره خدا مجادله می کنند ثانی عطفیه لیو ضل عن سبیل الله لهو فی الدنيا خزی و نذیکهو یوم القیامت عذاب الحريق آنها با تکبر و بی‌احتنایی نسبت به سخنان الهی میخواهند مردم را از راه خدا گمراه سازند برای آنان در دنیا رسوایی است و در قیامت عذاب سوزان به آنها میچشانیم ذالک بما قدمت یداک وان الله ليس بظلام للعبید و به آنان میگویم این در برابر چیزی است که دستهایتان از پیش برای شما فرستاده و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی کند. و من وامن الله این وَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ از میان مردم کسی است که خدا را تنها با زبان می‌پرستد و ایمان قلبی‌اش بسیار ضعیف است همینی که دنیا به او رو کند و نفع و خیری به او برسد حالت اطمینان پیدا می کند، اما اگر مصیبتی برای امتحان به او برسد دگرگون شود و به کفر رو می‌آورد به این ترتیب هم دنیا را از دست داده است و هم آخرت را و این همان خسران و زیان آشکار است یدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید او جز خدا کسی را میخواند که نه زیانی به او میرساند و نه سودی این همان گمراهی بسیار عمیق است یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لا بئس المولى او کسی را می خاند که زیانش از نفعش نزدیکتر است چه بد مولا و یاورید و چه بد منس و معاشری ان الله يدخل الذين و وعملوا الصالحات جنات این خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال سالح انجام داده در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختانش جاری است آری خدا هرچی را اراده کند انجام می دهد من کان یظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرت فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم اليقطع فلينظر ثم ما هر کس گمان می که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد و از این نظر عصبانی است، هر کاری از دستش ساخته است بکند ریسمانی به صف خانه خود بیاویزد و خود را حل قابیز و نفس خود را قطع کند و تا لبه پرتگاه مرگ پیش روید ببیند آیا این کار خشم او را فرو می نشاند؟ و کذالک انزلناه آیات بینات و ان الله یهدی من یرید این گونه ما آن را به صورت آیات روشنی نازل کردیم و خداوند هر کس را بخواهد هدایت می‌کند این الذين امنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا والذین اشركوا الله يفصل بينهم يوم القيامه این الله علی کلی شهید مسلمن، کسانی که ایمان آورده اند، و یهود و سابعان ستار پرستان و نصارا و مجوس و مشرکان خداوند در میان آنان روز قیامت داوری می کند، و حق را از باطل جدا می سازد. خداوند بر هر چیز گواه باز همه چیز آگاه هست. المتر أن الله یسجد له من في السماوات و في الأرض و والقمر, والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و وكثير وكثير الناس و حق علیه العذاب و يهن الله فما له من مكرم این الله یفعل ما یشاء آیا ندیدی که تمام کسانی که در آسمان ها و کسانی که در زمینند برای خدا سجده می کنند؟ و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و بسیاری از مردم اما بسیاری عذاب دارند و فرمان عذاب درباره آنان حتمی است و هر کس را خدا خار کند کسی او را گرامی نخواهد داشت خداوند هر کار را بخواهد و صلاح بداند انجام هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار من فوق رؤوسهم الحميم. اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند. کسانی که کافر شدند لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده و مایه سوزان و جوشان بر سرشان ریخته می شود فی آنچنان که هم درونشان با آن آب می شود و هم پوستهایشان ولهم مقامع من حدید و برای آنان گورزهایی از آهن سوزان است. كل <تصفح> ما ان ايي منها من غم من اعيدو فيها اعيدو فيها وذوق عذاب الحريق هرگاه بخواهند از غم و اندوهای دوزخ خارج شوند، آنها را به آن باز میگردانند و به آنان گفته می شود. بچشید عذاب سوزان را. این الله يدخل الذين آمنوا و عمروا جنات، جنات تجری من تحت ها الانهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فيها حرير خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند، در باغ هایی از بهشت وارد می کندند که از زیر درختانش نهرها جاری است. آنان با دستبند هایی از طلا و مروارید زینت می شوند و در آنجا لباس هایشان از حریر است. و هدوء الى و به سوی سخنان پاکیزه هدایت میشوند و به راه خداوند شایسته ستایش راه نمائی می گردند این الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جَعَلْنَا کسانی که کافر شدند و مؤمنان را از راه خدا باز داشتند و همچنین از مسجد الحرام که آن را برای همه مردم برابر قرار دادیم چه کسانی که در آنجا زندگی می کنند یا از نقاط دور وارد می شوند مستحق عذابی دردناکند و هر کس بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و دست به ستم زند ما از عذابی دردناک به او میکشانیم؟ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ, للطائفين وَالْقَائِمِينَ والركع السُّجُودِ بخاطر بیاور زمانی را که جای خانه کعب را برای ابراهیم آماده ساختیم تا خانه را بنا کند و به او گفتیم چیزی را همتای من قرار مده و خانه امرا برای تباف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان از آلودگی بطها و از هر گونه آلودگی پاک صاف فی الناس بالحج یاتوک رجالاً وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر یاتین من كل فج عميق. و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکبهای لاغر از هر راه دوری به سوی تبه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فی ایام معلومات على, على ما رزقهم من بهیمت الانعام فکنو منها و البائس الفقير تا منافع گوناگون در این برنامه حیات بخش باشند و در ایام معینی نام خدا را بر چهار پایانی که به آنان داده است به هنگام قربانی کردن ببرند پس از گوشت آنها بخورید و بی نوای فقیر رانیز اطعام نمائید ثم اليقضو تفثهم و اليوفو نذورهم و سپس باید آلودگی هایشان را برطرف سازند و به نظرهای خود وفا کنند و بر گرد خانه گرامی کعبه تواف کنند ذالک و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربیه و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم فاجتنبوا الرجس من الاؤثان واجتنبوا قول الزور مناسک حج این است و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد نزد پروردگارش برای او بهتر است و چهار پایان برای شما حلال شده مگر آنچه ممنوع بودنش بر شما خانده می شود از بچهای پلید اجتناب کنید و از سخن باطل بپرهیزید حنفاء علی الله غیر مشرکی به و من یشرک بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه مطیر الطير أو تهوی به الريح في مكان سحيق. برنامه و مناسک حج را انجام دهید در حالی که همگی خالص برای خدا باشد هیچ گونه همتای برای او قائل نشید و هر هرکس همتای برای خدا قرار دهد گویی از آسمان سقوط کرده و پرندگان در وسط هوا او را می و یا تند باد او را به جای دور دستی پرتاب می کند و من شعائر الله من تقوى این است مناسک حج و هر کس شعائر الهی را بزرگ دارد این کار نشانه لکم فیها منافع الى اجر مسم ثم محلها ثم محلها الى البيت العتیق در آن حیوانات قربانی منافعی برای شماست تا زمان معینی روز ذبح آنها سپس محل آن خانه قدیمی و گرامی کعبه است. ولکل امت جعلنا من سکل یذکر اسم الله علما على ما رزقهم من بیمه الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا و برای هر امتی قربانگاهی قرار دادیم تا نام خدا را به هنگام قربانی بر چهار پایانی که به آنان روزی داده این ببرند و خدای شما معبود است در برابر فرمان او تسلیم شوید و بشارت ده متواضعان و تسلیم شوندگان را الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على, على ما اعصابهم والمقيم الصلاه ومن همانها که چون نام خدا برده می شود دلهایشان پر از خوف پروردگار می و شکیبایان در برابر مصیبتهایی که به آنان میرسد. و آنها که نماز را برپا میدارند دارند و از آن که به آنان روزی داده این انفاق میکنند کنند جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون چاق و شترهاي و فربه را در مراسم حج برای شما از شعائر الهی قرار دادیم در آنها برای شما خیر و برکت است نام خدا را هنگام قربانی کردن در حالی که به صف ایستاده بر آنها ببرید و هنگامی که پهلوهایشان آرام گرفت و جان دادند از گوشت آنها بخورید و مستمندان قانع و فقیران نیز، از آن اطعام کنید این گونه ما آنها را مسخرتان ساختیم تا شکر خدا را به جا آبرید لین ی نال الله لحومها ولا دماؤها لین ی نال الله لحومها ولا دماؤها ولیکن ی ناله التقوى منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم نگوشت ها و نخون های آنها هرگز به خدا نمی رسد آنکه به او میرسد تقوا و پرهیزگاری شماست اینگونه خداوند آنها را مسخر شما ساخته تا او را به خاطر شما را هدایت کرده است بزرگ بشمرید و بشارت ده نیکو کاران را این الله یدافع عن الذين آمنوا. الله لا يحب كل خداوند از کسانی که ایمان آورده دفاع میکند. خداوند هیچ خیانتکار ناسپاسی را دوست ندارد اذن للذین یقاتلون بی انهم و این الله على نصرهم لقدير. به کسانی که جنگ برانان تحمیل گردیده اجازه جهاد دادی شده است چرا که مورد ستم قرار گرفته و خدا بر یاری آنها تواناست الذين <تصفح> اخرجوا من ديارهم بغير حق الا الا اي يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليننصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز همانها كه از خانه و شهر خود به ناحق رانده شدند جز اینکه میگفتند پروردگار ما خدای یکتاست و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند دیرها و صومه ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود ویران میگردد و خداوند کسانی را که یاری او کنند و از آئینش دفاع نمایند یاری میکند خداوند قوی و شکست ناپذیر است الذين <سؤال> امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور همان کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند و امر به معروف و نهی از منکر میکنند. و پایان همه کارها از آن خداست. و این فقد کذبت قبلهم، فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و اگر تو را تکذیب کنند امر تازه نیست پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود پیام برانشان را تکذیب کردند و قوم ابراهیم و قوم لوط. و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوت و اصحاب مدین و موسى فأملیت للكافرین ثم أخذتهم فکیف كان نکیر و اصحاب مدین قوم شعیب و نیز موسى از سوی فرعونیان تکذیب شد اما من به کافران مهلت دادم سپس آنها را مجازات کردم دیدی چگونه عمل آنها را انکار نمودم و چگونه به آنان پاسخ گفتم فکا این من قریت اهلکناها و هی ظالمه و هی ظالمة ظالمة على عروشها و بئر معطله و بئر و قصر مشیده چه بسیار شهرها و آبادیهایی که آنها را نابود و خلاک کردیم در حالی که مردمش ستمگر بودند به ای که بر سقفهای خود فرو ریخت نخست سقفها ویران گشت و بعد دیوارها بر روی سقفها و چه بسیار چاه پر آب که بی صاحب ماند و چه بسیار قصرهای محکم و مرتفع آیا يسمعون لا التي آيا آنان در زمین سير نکردند تا دلهایی داشته باشند که حقیقت را با آن درک کنند یا گوشهای شنوایی که با آن ندای حق را بشنوند چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی شود بلکه دلهایی که در سینه هاست کور می شود و یخلف الله وعده و این يوم عند ربك كالف سنه مما تعدون آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب میکنند در حالی که خداوند هرگز از وعده خود تخلف نخواهد کرد و یک روز نزد پروازگارت همانند هزار سال از سالهایی است که شما میشمرید و که این من قریت امليت لها و هی ثم, ثم اخذتها و المصیر و چه بسیار شهرها و آبادیهایی که به آنها مهلت دادم در حالی که ستمگر بودند سپس آنها را مجازات کردم و بازگشت تنها به سوی من است قل يا ايها الناس انما أنا لكم نذير مبین بگو اي مردم من برای شما بین دهنده آشکاری هستم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، آمرزش و روزی پرارزشی برای آنهاست. والذین سعوا آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. و آنها که در محو آیات ما تلاش کردند و چنین میپنداشتند که می توانند بر اراده حتمی ما غالب شوند اصحاب دوزخند و ما من قبل که من رسول ولا نبی الا, الا اذا تمننا القش شیطان في امنیته فينسخ الله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 فیانسخ الله ما يلقی الشیطان ثم يحکم الله آیاده والله علیم حکیم هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو میکرد و ترهی برای پیش برد اهداف الهی خود می ریخت شیطان القاعاتی در آن میکرد اما خداوند القاعات شیطان را از میان میبرد. سپس آیات خود را استحکام می و خداوند علیم و حکیم است لیجعل ما يلقی الشیطان فتنة للذین في قلوبهم مرض و قلوبهم وَإِنَّ هدف این بود که خداوند القای شیطان را آزمونی قرار دهد برای آنها که در دلهایشان بیماری است و آنها که سنگ دلند و ظالمان در عداوت شدید دور از حق قرار اند. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ونیز حدف این بود که آگاهان بدانند این حقیست از سوی پروردگارد و در نتیجه به آن ایمان بیاورند و دلهایشان در برابر آن خاضع گردد و خداوند کسانی را که ایمان آوردند به سوی سرات مستقیم هدایت می یزال کفروا فی منه حتی تعدیه او کافران همواره درباره قرآن در شک هستند تا آنکه روز قیامت به طور ناگهانی فرارسد یا عذاب روز عقیم روزی که قادر بر جبران گذشته نیستند به سراغشان آید الملق یوم ایذن لله یحکم بینهم فالذین آمنوا و عمروا الصالحات في جنت النعیم حکومت و فرمان در آن روز ازان خداست و میان آنها داوری می کند کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند در باغهای پر نعمت بهشتند وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا آیَاتِنَا فأولائك, فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ وَكَسَانِی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند عذاب خار کننده ای برای آنهاست وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله له هو خير الرازقين پس کسانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتند خداوند به آنها روزی نیکی میدهد که او بهترین روزی دهندگان است لیود غیلا نهوم مدخالایی یا باونه و این خداوند آنان را در محلی وارد می کندند که از آن خشنود خواهند بود و خداوند دانا و برد بار است ذلی. و من عاقب بی مثل ما عوقب بهی ثم بغی علیه لینصرنه الله این الله لعفو غفور آره مطلب چنین است و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده مجازات کند سپس مورد تعدی قرار گیرد خدا او را یاری خواهد کرد یقینا خداوند بخشنده و آموزنده است. ذالک بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. این وعده نصرت الهی به خاطر آن است که او بر هر چیز قادر است خداوندی که شب را در روز و روز را در شب داخل می کند و خداوند شناوا و بیناست ذلك بئن بی الله هو الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. این به خاطر آن است که خداوند حق است و آنچه را غیر از او می باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ است. اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَاءً فَتُصْبِحُ <تصفيق> الْأَرْضُ مُخْبَرَهُ اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرستاد و زمین بر اثر آن سرسبز و خرم می گردد؟ و خداوند لطیف و آگاه است. له ما في السماوات و ما في الارض و این الله لهو الغنی الحمید آن در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند بی و شایسته هر گونه ستایش است اَلَمْ <سؤال> تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اِنَّ اللَّهَ بِالْدَسِلَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ آیا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است مسخر شما کرد و نیز کشتیهای را که به فرمان او بر صفحه اقیانوسها حرکت میکنند و آسمان کرات و سنگهای آسمانی را نگه میدارد تا جز به فرمان او بر زمین فرو نیفتند خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است. وهو الذی احیاكم ثم یمیتكم ثم یحییكم ان الانسان لكفور و او كسی است شما را زنده كرد سپس میمیراند بار دیگر زنده میکند اما این انسان بسیار ناسپاس است جعلنا من هم مستقیم برای هر امتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را در پیشگاه خدا انجام دهند پس نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند. به سوی پروردگارت دعوت کن که بر هدایت مستقیم قرار داری و راه راست همین است که تو و این جدل الله اعلم بما تعملون. و اگر آنان با تو به جدال برخیزند بگو خدا از کارهایی که شما انجام میدهید آگاهتر است الله مو و فی و خداوند در روز قیامت میان شما در آنکه اختلاف میکردید داوری می کند. الم د أنَّ الله علم و مفی السی والرض اینندیکفی کتاب این ذلك على الله یر آیا نمیدانستی خداوند آنچه را در آسمان و زمین است میدانند همه اینها در کتابی ثبت است همان؟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 که او هیچ گونه دلیلی بر آن نازل نکرده است و چیزها ایرا را که علم و آگاهی به آن ندارند و برای ستمگران یاور و راهنمایی نیست و اذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذین كفروا المنكر یا کادون یسکون بالذین یتلون عليهم آیاتنا قل أفأنبئکم بشر من ذلکم ان وعدها الله الذين کفروا وبئس المصير و هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده میشود در چهره کافران آثار انکار مشاهده می کنی آنچنان که نزدیک است برخیزند و با مشت به کسانی که آیات ما را بر آنها میخوانند حمله کنند بگو آیا شما را به بدتر از این خبر دهم؟ همان آتش سوزنده که خدا به کافران وعده داده و بد سرانجامی است؟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 ای مردم، مسلی زده شده است، به آن گوش دهید کسانی را که غیر از خدا می هرگز نمی مگسی بیافرینند هرچند برای این کار دست به دست به هم دهند و هرگاه مگس چیزی از آنها برو باید نمی آن را باز پس گیرند هم این طلب کنندگان ناتوانند، و هم آن مطلوبان، هم این آبدان، و هم آن معبودان. ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوی عزیز خدا را آن گونه که باید بشناسند، نشناختند. خداوند قبیل و شکست ناپذیر است، الله یصطفی من الملائکه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير خداوند از فرشتگان رسولانی برمیگزیند و همچنین از مردم خداوند شنوا و بیناست. یعلم ما بین ایلیم و خلفهم و الله ترجع الامور. آنچرا در پیش روی آنها و پشت سر آنهاست میداند و همه امور به سوی خدا بازگردانده می شود. یا ایو الذین آمنوا ørکعوا واسجدوا وعبدو ربکم وافعلوا الخير وافعلوا تفلحون ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع کنید و سجود بجا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید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 وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء أعلنا سفّاقيم الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعما نصير و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید او شما را برگزید و در دین اسلام کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید خداوند شما را در کتاب‌های پیشین و در این کتاب آسمانی مسلمان نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم. پس نماز را برپادارید و زکات را بدهید و به خدا تمسک جویید که او مولا و سرپرست شماست. چه مولای خوب و چه یاور شایسته ای.